ادوات و شرطی ال و اعرابها ادوات شرطی که مجزوم میکنن جازم هستند چون ما سری ادوات شرطی داریم که فعل رو مجزوم نمیکنن و در درس بعدی بحث میشه ولی اینا مجزوم میکنن اینا فعل مضارع رو چیکار میکنن و اعراب خودشون چه هست فعل خودشون اعراب دارن اسمن اعراب دارن نقش دارن منصوبان مرفوعان مجروران چه ایرابی دارن؟ اعرابشون رو تو این درد برای شما توضیح میده در حالی که در کتاب های قبلی میگفت اینا عدات شرط حسن فعل مزاره رو مجزون میکردن هم هم فعل شرط رو هم جواب شرط رو ولی اینجا دیگه اعراب خودشون هم چکار میکنه؟ چه ایرابی دارن؟ متا یعت ربیعو یو زرعی القطنو همسل گروه امثل اول رو کنید؟ ایانه تکن و یک سر محبوکا متا و ایانه اینا از عدوات شرط هستن یعطی و یزرع تکن و یکثر سر این دوتا رو کدومی که مجلوم کرده در مثال اول متا مجلومشون کرده و در مثال بعدی ایانه اینا پس فعل مظاهرش کار کردن هم شرط رو مجلوم کردن و هم فعل شرط رو و هم جواب شرط رو ولی اینا خودشون چه اعرابی دارن؟ بسیارم موقعی که ما رو گفتن این جمله رو ترکیب کنید اعرابش کنید متا یعفر ردی و یوزر القطر ما در مورد متا چی میگیم؟ میگیم متا چون اسم زمان هست متا چی هست؟ بله ادات هم ادات شرط هست ولی دلالت بر چی میکند؟ بر زمان میکنه میگیم متا زرد یا همون مفعول فیه یعطی فعل مزاره ناقصه چون مجزوم هست علامت جزمش هست حرف عله هست عربی او فائل مرفو بازمه یزرع جواب شرط هست مجزوم هست علامت جزم کسره القطنو فائل یزرع هست حالا پس متن اخشتی شد؟ چه ارابی داره؟ ظرف به. منصوب هست به خاطر ظرف بودن. ا نه دو مثال آورده خیلی دفق. ا یا تکن وفی یعنه یک سر محبوع کرد. ای نقششته هست ای نقششته از به نظر شما؟ نه ای ظرف نیست. ایانا ظرف نیست در مثال بعدی ایانا تکن وفیان یک سر محبوکا تکون وفیان یک سر محبوک میدونید در امثله گروه دوم چرا دو تا مثال آورده به خاطر این که متا و ایانه هستند اولا هر دو چاشون دلالت بر زمان میکنند دو در مثال اولی فعل تام رو آورده بود که یعطی هست ولی در مثال دوم دو فعل از فعل ناقصه آورده یکون رو آورده بود تکون رو منظورش اینه که اگر فعل تام بود اون اسم زمان اون عدات شرطی که دلالت بر زمان میکنه اعراب دیگه ای داره و اگر فعل ناقص باشه اون عدات شرط اعراب دیگه ای داره در متایعتی متا, متا زرف بود و محلن منصوب در ایانه خبر تکل هست و محلن منصوب بگو بعد از پنج دکه یه سر کلاس و درسی ها بگو الان یه هم دب بگو ایانه؟ نقشش می خواد ایراب اعرابش خبر تکن هست ببین اگر اگر فعل شرط ما فعل تام می بود اینایی که دلالت بر زمان می نقششون منصوبن به خاطر ظرف بودن ولی اگر فعل ناقص بود منصوبن به خاطر خبر بودن به خاطر چی خبر همون فعل ناقص خبر همون فعل ناقص به خاطر این ها بله مثل تکن که جاز برید امسلی گروه دوظم این اینا الظلم بلکن نیسان این یکثور الظلم نا یکثوره بخاتم که فیل و مجزومه دیگه این یکثور الظلم یبعو فیل عمرانو یک سوری اگر یک سوره هست خراب حرکت داره جان؟ جزمش سوره نه چیز جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب جذب یک طور فعل شرط هست مجدون یا معوف همچون جواب شرط است. ایل نقشش چه هست اینجا؟ ظرف و, و منصوب چرا؟ چون فعل تام هست اما در اننا یکونه نیلو جاریان تخصیب الاربوف اننا دیگه چه هست؟ اینجا چیست؟ خبر برای یکون بشید بله خبر برای یکون شد چون فعل چه هست؟ ناقصی, ناقصی. برم امسلی گروه سیدون اییا لعبن تلعب بس دارم امسلی سیدونه توخ سیبل اردو توخ سیبل توخ سیبل گروه تلعب یلعب اخوک نفع تنفع کلمه کلمه ای دلالت بر حدس میکنه ببینید این کلمه ای مضاف به هر کلمه بود و معنی رو میده ایا لعبن ایا نفعن مضاف به مصدره هست معنی همون رو میده معنی همون چی رو میده؟ که مضافه هست به سمتش این ای که مضاف به این مصدر هست دلالت بر حد حادثه ای میکنه در مثال اول دلالت بر بازی میکنه در مصدر در مصدر همیشه نقشی واقع میشه مفعول مطلق دیگه پس اینجا جه ای مضاف به مصدر هست پس در این نوع امثله سوم کلمه ای همیشه مفعول مطلق اعرابش میشه چیه میگیم ایه مفعول مطلق لعبن مضاف الیه تلعب فعل شرط مجزوم یعنی لعب جواب شرط مجزوم اخوکه هم که اخو فائل هست و کافم مضاف نیله فس ایه ای چون دلالت بر حدث میکنه و معنیش هم به معنی همون چیزی که به سمتش مضاف شده و مصدر هست این پس نقشش مفعول مطلق هست مفعول مطلق برای فیل شرطی که بعد از خودش اومده است. شماره چار رو اگر امثل گروه چار رو دقت کنید که کما تو عامل اخواانکه یا عامونک کیفما دلالت بر چی میکنه؟ دلالت برحال میکنه به هر شکلی به هر حالی که برخورد کنی برادرانت را با تو چکار میکنه؟ کیف ما چون دلالت بر حالت میکنه نقش چی هست؟ بله. فل اگر اگر فل تام باشه اینو من ضبط شد توقف کنم. من با توجه به که این بحث ضبط میشه نگهش داشتم نمیدونم به کجا رسیده بودیم کیف آره کیف ما کیف ما اگر اون اداه شرط دلالت بر ظرف کرد نقششو گفتیم 4 چار، 4 مثال اولی اما اگر دلالت بر هدف کرد باز هم نقششو گفتیم گفتیم مفعول مطلب واقع میشه حالا رسیدیم به گروه همسری چارون اگر دلالت بر کفیت حا... کیفیت کرد دلالت بر چی کرد کیفیت کرد. متوجه هستید؟ اینجا نقشش چی میشه؟ بر حالت اگر دلالت کرد. بر حالت. بله. پس کیف ما تو آمل نقش کیف ما میشه حال محلن منصول تو آمل که خب فعل شرط هست. اخوانه مفهومیهای که مزاحمل اله. چون تو عمل فیلش انتای مستطر هست فایلش یو عاملوکه که هم میشه جواب شرط کیفما. ما پس کیفما، ما اگر حالو حالو حال و دلالت بر حال و معنای حال داشت اون موقع نقششتی میشه نقشش حال میشه حالت رو داره برن میکنه. کیفما ما تو عامل هر طور که معامله کنی هر حالی که معامله کنی با تو اون طوری معامله میشه پس کیف ما نقششتی هست حالا اگر فیل پام باشه ولی اگر فیل ناقص بشه اون موقع چی هست؟ خبر همون فیل ناقص میشه مثلا مثال گروه هم سلیه چارون مثال دو همه دیقت کنید كيف ما یکن المعلمو یکن تلامیدهو كيف ما اینجا خبر یکن هست خبر چی هست؟ یکن هست که اسمش هم معلم هست اسم یکن پس سر وران من؟ این تفصیلات زیادی داشت این عدات شرط عدات شرط که مجزوم میکنند فعل مزاره رو اعرابشون متفاوت بود اگر دلالت بر زمان میکرد دو حالت داشت اگر فعلش تام بود اعراب دیگه ای داشت اگر فعلش ناقص بود اعراب دیگه ای داشت که همه شون بیان شدن اما گروه امثلال پنجم رو دقت کنید که این عدات شرط دلالت بر ذات میکنند دلالت بر چی میکنه؟ من یک سر کلامهو یک سر ملامهو هر کسی که پس دلالت بر چی کرد؟ بر ذات کرد هر کسی که سخنش زیاد باشد ملامت بر اون هم زیاد بیشه من یکن عجولا یک سر زللوهو هر کسی انسان عجولی باشه لغزش هست زیاد هست عجول یعنی عجول عجله کسی که عجله میکنه من احترمن بله اجله درست نیست به قول استاد مگر در نکاح بله من احترم الناس احترموه ما تقرع یفت که بس اینا اینا ها انت من و ما دلالت بر ذات میکنند ولی یه چیزی به شما بگم اون این هست که در سم سال اولی با چارو میفرق میکنه من یکسر کلامه و یکسر ملامه من یکن عجولا یکسر زلله من احترم الناس او این ستای اولیی ستای اولی مبتدا هستن و محلن مرفوض چرا در اولی مبتدا هست؟ چون یکثور فعل لازم هست چون یکثور فعل چه در دومی فعل هم ناقص هست در دومی فعل چه بله؟ آره؟ نه نه مبتدای جان اسم من جان من من یک طور کلامو یک من مبتدا میشه من اولی من یکن اینجا در یکن چی میشه اسم یکن میشه بله پس نه در مثال اولی دقت کنید این در مثال دومی که گفتید من خبر میشه خبر نمیشه. نه اسم هم نمیشه. دقت کنید چون جمله با من شروع میشه. چون جمله با شروع میشه میشه من مبتدا، اینجا مبتدا خبر داره. یکون خودش اصلا خبر میشه. یکون خودش چی میشه؟ خبر میشه. چون خبر ما اینجا خودش جمله هست. خبر ما چی است؟ پس من در مثال اولی مبتدا در مثال دومی هم مبتدا هست من احترم من, من احترم من الناس اهتموا. احتر آها. ببینید همان طوری که همان طوری که أيوه باسهم نيجي هدار ميكي